این داستان شاهزاده خانومی در پوست خرس. پادشاهی بود که تنها یک دختر داشت، دختری به زیبایی گل رز که در زندگی همه چیز داشت به جز آزادی. پادشاه به حدی دخترش رو دوست داشت که اجازه نمیداد اون جز توی باغ که دورش رو دیواری بلند گرفته بود تو جای دیگه آفتابی بشه. دختر زیبا در پشت دیوار باغ قح بچه ها، تق, تق رفت و آمد اسباب و کالسکه ها زمزمه جوونا و آهنگ رژه سربازا رو میشنید و از اینکه شب و روز توی چهار دیواری باغ زندونی بود و نمیتونست مثل مردم عادی زندگی کنه ناراحت بود تا روزی از روزها ندیمه پیر دربار دلیل سردرگمی و پریشانی دختر رو پرسید شاهزاد خانم گفت چی بگم دلم گرفته و غمگینم؟ چرا که همیشه تنها و نمیتونم بیرون برم. بارها از پدرم اجازه خواستم مثل بقیه توی کوچه و خیابون قدم بزنم تو عذاب و عروسی مردم شرکت کنم ولی همه خواهش ها و تمناهام هم بی نتیجه مونده. چرا که پادشاه میترسه که من شوهر برم و از کنارش دیگه دور بشم. ندیمه پیر با شنیدن این حرفها به اون گفت؟ که برای حل این مشکل از پدرش بخواد تا براش سه دست لباس و یک پوست خرس تهیه کنه لباس هایی بسیار نازک و ظریف که توی پوست گردو جا بگیره و بر روی اولی عکس ماه بر روی دومی عکس خورشید و بر سومی عکس ستاره نقاشی شده باشه بعد از دختر خواست این راز رو با هیچ کس بیان نکنه دختر به حضور پادشاه رفت و نظر ندیمه را با اون در میون گذاشت. پادشاه از تقاضای شاهزاده خانم مات و مبهوت شد، مخصوصاً از درخواست پوست خرس، ولی به روی خودش نیاورد و دستور داد تا سه دست لباس و یه پوست خرس خریداری بشه. نقاش ماهریم هم عکس ماه و خورشید و ستاره را رو بر روی اونا نقاشی کرد و همه را در اختیار دختر گذاشت. شاهزاده خانم سه تا پوست گردو هم تهیه کرد و لباس ها رو تو اونا جا داد. اونا رو با پوست خرس برداشت و به سرعت نزد ندیمه رفت تا بقیه حرفاشون رو بزنن. ندیمه پوست خرس رو به تن شاهزاده خانم کرد و گفت حالا من از تو یک خرس میسازم. نترس. نه ترس. پوست خرس رو به تن کن. هر وقت ترس به سراغت اومد به من فکر کن تا دوباره به شکل همون شاهزاد خانم قبلی برگردی. ندیمه یکی از درای باغ رو باز کرد و شاهزاد خانم رو به جنگل های اطراف فرستاد. توی افسانه ها و متل ها معمولا زمان زود میگذره و آدم تا دهان باز میکنه شب تموم میشه. حالا هم خیلی زود یک ماه از زمان رفتن شاهزاد خانم به جنگل میگذره. یک ماهی که مثل برق گذشت و گویی یک دقیقه بوده. اون خوشحال خندون توی جنگل داشت گردش می کرد، توت فرنگی وحشی می خورد، اصل زنبورهای کوهستان رو نوش جون می کرد و آب زلال و گواره چشم سالان رو سر میکشید. ولی روزی از روزها راهش رو گم کرد و از شکارگاه پسر پادشاه کشور همسایه سر در آورد. پسر پادشاه با دیدن اون سوت خودش رو به صدا در آورد و فوری یک گله سگ شکاری و عدهای مرد شکارچی در پشت سر پسر پادشاه خرس رو محاصره کردن و بر سرش ریختن پسر پادشاه خرس دست آموز زیاد دیده بود ولی همچین خرسی ندیده بود که مثل آدم حرف بزنه حتی توی خوابش اون سگا رو آروم کرد و از خرس خواست تا همراه اون به قصر سلطنتی بره. خرس هم اطاعت کرد و به دنبال شاهزاده و کنار سگا و شکارچیا به طرف قصر به راه افتاد. اون خرس حیوانی چابک و کاردان بود و وظیفه خودش رو به بهترین وجه انجام میداد. اگر جارویی به دستش میدادی، تونتر و بهتر از خدمتگزارای دیگه همه جا رو تمیز میکرد. با یه تشت آب به ظرفا برق مینداخت و مهمتر اینکه همیشه پایین پای شاهزاده مینشست و به حرفاش گوش میکرد شبی از شبها شاهزاده از ملکه اجازه خواست تا به مهمونی بره اونم موافقت کرد و گفت پسرم برو امیدوارم شب خوبی داشته باشی یادت بمونه که تو بالاخره باید ازدواج کنی بنابراین به فکر پیدا کردن همسر زیبا و شایسته باش در این زمان خرس از پایین پای شاهزاده بلند شد و گفت منم دوست دارم به مهمونی بیام لطفا منم با خودت ببر شاهزاده از این همه شیرینکاری خرس از خنده روده بر شد و به اون دستور داد برزیر پله ها. جایی که محل خوابشه خرس هم رفت و خودش رو به خواب زد با رفتن شاهزاده از اتاق در رو بست و آهی کشید و گفت آه ای ندیمه عزیزم اونقدر میترسم که مرگ رو چشم چشمم می بینم. تولی نکشید که دوباره به شکل شاهزاده خانم زیبایی در اومد. به سرعت اولین پوست گردو رو که لباس ماه نشان توی اون قرار داشت رو باز کرد لباس را بیرون آورد و آهسته برتن کرد و دور از چشم دیگران از پله های پشت به سالن میهمانی رفت. به محض ورود شاهزاده خانم با لباس ماهنشان همه حاضران مات و مبهوت به اون خیره شدن چرا که کسی رو به زیبایی اون ندیده بودند. شاهزاده با دیدن شاهزاده خانم کنارش نشست و سر صحبت رو باز کرد. مهمونی تمام شب ادامه داشت ولی زمان برای شاهزاده به تندی گذشت اون وقت خداحافظی گفت ای دختر زیبا اهل کجایی اون گفت از شهر کلیپس هستم آلی جناب بعد از اون از چشما ناپدید شد و به سر جای خودش برگشت زیر پله ها لباس ماهنشان را داخل پوست گردو گذاشت و در پوست خرس رفت و دوباره به شکل و شمایل خرص در اومد. فردای اون شب شاهزاده قصه آشنایی خودش رو با دختر زیبا رو برای مامانش داشت تعریف میکرد و میگفت که اگر اون دختر رو کاملا بشناسه توی اولین فرصت باش ازدواج میکنه. خرس با شنیدن این حرف از جا بلند شد و گفت اگه اون دختر من باشم چی؟ شاهزاده مات و محبود از حرکات عجیب و غریب خرس با توپ و تشر از اون خواست تا از حرفهای بی ربط دست بکشه. اون وقت برای اون که سر نخی از کلیپس به دست بیاره چندین بار نقشه جهان رو زیر و رو کرد ولی دست از پادرازتر نشونی اون محل رو پیدا نکرد. شب دیگهی بر سر میزه شام شاهزاده به مادرش گفت امشب بازم مهمونی میرم. شاید اون دختر زیبا رو ببینم. ملکه گفت برو پسرم امیدوارم خوش بگذره و خوشحالتر از اون شب برگردی. خرس که در پایین پای شاهزاده نشسته بود وسط حرف اون دوید و گفت منم دوست دارم با شما بیام منم با خودتون ببرید. شاهزاده خنده کنان دستور داد که بره زیر پله. خرس دوباره به زیر پله رفت و به شکل شاهزاده خانمی زیبا در اومد. پوست دومین گردو رو باز کرد و لباس خورشید نشانش رو پوشید. با ورود اون به سالن مهمونی همه حاضرین بیش از روز پیش در زیبایی و جمالش حیرون موندند. شاهزاده به سرعت نزد اون ناشناس زیبا رفت و تمام مدت کنارش نشست. وقت رفتن از دختر خواست بگه که از کجاست و چه اصل و نسبی داره. شاهزاده خانم خیلی مختصر پاسخ داد که اهل موش بورگه. اون وقت دور از چشم شاهزاده از نظرا محو شد و به زیر پله رفت. پوست خرس رو پوشید و دوباره به شکل خرس در اومد. صبح روز بعد شاهزاده قصه ملاقات خودش رو با دختر زیبا رو برای مادرش تعریف کرد و با آه و حسرت گفت که اون دختر بسیار زیباتر از قبل شده بود. ولی افسوس و صد افسوس که اون رو نمیشناسه تا مقدمات عقد و عروسی رو فراهم کنه خرس با شنیدن حرفهای شاهزاده سرش رو بلند کرد و گفت اگه اون دختر زیبا من باشم چی میگی؟ شاهزاده حیرون و سرگردون به دنبال یافتن موشبورگ تمام نقشه ها رو زیر و رو کرد ولی باز هم پیدا نکرد سرانجام شبی از شبها شاهزاده به مادرش گفت امشب برای سومین بار توی مهمونی شرکت میکنم شاید باز هم سر کله اون دختر زیبا پیدا بشه این بار باید بفهمم اون کیه ملکه گفت برو پسرم امیدوارم خوش بگذره و خوشحالتر از اون شب برگردی خیر، طبق معمول حرفا رو شنید و گفت منم دوست دارم بیام مهمونی منم با خودت ببر شاهزاده با اینکه حال و حوصله خنده نداشت خندید و لگدی به خرس زد و در انتظار دختر زیبا نشست به محض آنکه دختر با لباس ستاره نشان وارد سالن شد همه مات و مبهود از اون همه زیبایی محو جمال اون شدند شاهزاده که تا صبح با آن صحبت کرده بود هنگامی که خُروس برای بار سوم و به عنوان اعلام روشن شدن هوا بانگ سر می داد، یه انگشت در الماس به انگشت دختر کرد و گفت خواهش میکنم بگو که اهل کجایی دختر گفت که اهل بورگ پتوسم اون وقت بدون خداحافظی از شاهزاده از پله ها رفت پایین توی راه روی باریک از نظرها پنهون شد شاهزاده که اون رو می میکرد از رفتن باز موند و در انتهای راه رو همون خرس رو روبروی خود حاضر دید صبح سر میز صبحونه شاهزاده ساکت و آروم نشسته بود و اندوهگین و ناراحت لب به غذا نمیزد. اون تنها این کلمات رو زمزمه میکرد که اون نسبت به روزای قبل خیلی خوشگلتر شده بود. ای کاش میدونستم اون کیه تا باهاش ازدواج کنم. خرس ناغلا یک وسط حرفش پرید و گفت اگه اون دختر من باشم چی؟ شاهزاده با عصبانیت بر سر خرس فریاد کشید و از اون خواست ساکت باشه و مسخره بازی در نیاره. بعد از حاضران در مورد برج پتوس پرس و جو کرد ولی کسی نتونست به اون کمکی کنه. حال شاهزاده از شدت غم و اندو روز به روز بدتر شد و بر تخت بیماری افتاد. ملک هم شب و روز گریه و زاری سر می داد. در این وقت خرس نزد ملکه اومد و گفت ملکه عزیز گریه نکنید با گریه مسائل و مشکلات حل نمیشه صبر و حوصله داشته باشید من میتونم به شما کمک کنم ولی ملکه دست رد به سینه خرس زد و گفت ساکت باش تو چطوری میتونی توی این مسئله مهم به ما کمک کنید در حالی که بهترین دکترای این سرزمین از مداوا معیوس شدن خرس اصرار کرد و اجازه خواست تا با گیاهان و سبزیجات جنگلی سوپی شفا بخش و مفید درست کنه تا بیمار رو از مرگ نجات بده. سرانجام ملک تسلیم شد و به اون اجازه داد تا شاهزاده رو معالجه کنه. خرس به سرعت سوپی شفا بخش درست کرد و بشقابی از اون رو به ملکه تقدیم کرد تا به شاهزاده بده. اون هم دست مادر رو کوتاه نکرد و سوپ رو خورد. اما یک بار از تعجب شاخ در آورد. چرا که ته بشقاب چیزی تکون میخورد. قاشق رو یک بار، دو بار، سه بار به ته بشقاب زد تا اون شی رو در آورد. با کمال تعجب همون انگشتری رو که مهمونی به دختر هدیه داده بود مشاهده کرد. اون قدرتش صد چندان شد از بستر بیماری بلند شد و از مادرش پرسید که آشپز سوپ کیه ملک گفت خرص تو پسر عزیزم شاهزاده که سلامت کامل خودش رو یافته بود از تخت بیماری اومد پایین و از مادرش خواهش کرد تا خرس رو نزد اون بیاره خرس که پشت در این پا و اون پا میکرد با باز شدن در وارد شد پنجش رو بر سر شاهزاده گذاشت و سرش رو به سینه اون چسبوند. شاهزاده حیرت زد و خوشحال گفت پس اون دختر زیبا تو بودی ای خرس ناغلا؟ خرس گفت بله ای شاهزاده عزیز. پوست خرس از تنش افتاد و دختری مثل پنجه آفتاب توی لباس ستاره نشان در برابر شاهزاده ایستاد. مثل همه افثانه های دیگه ما، در اینجا هم همه چیز به خوبی و خوشی به آخر رسید. شاهزاده و دختر زیبا رو سال‌های سال به خوبی و خوشی کنار هم زندگی کردند. کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های ای صوتی. نشانی کانال تلگرامی t.mi .me, slash مهران دوستیتی t نوکت m e نشانی وبلاگ ما m e h r بی ال او جی اف ای <موسیقی> کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بوستانی